بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و والسلام على سلام اشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله واصحابه اجمعین اما بعد وقتی حضرت یوسف علیه الصلاة والسلام در چاه انداخته شد و برادران یوسف آمدند پیش پدر و شب برگشتند الله رب العالمین بیان داستان می‌فرماید و جاءوا اباهم عشاء یبکون شبانه آمدن گریه کنان قبل از این که داخل منزل بیایند در مسیر گریه کنان در ورودی منزل گریه کنان آمدن و علتی که این شب اومدن تا که بهتر بتونند به اثبات برسونند جرم خود را و اون اوضلی که میخوان بیان بکنند بهتر در نفس حضرت یعقوب علیه صلات و سلام مورد پذیرش باشه اگر زود می که دنبالش نگشتن باید شبانه می آمدن و در تاریکی هم خود تاریکی حیابردار هست تاریکی حیارو بر می داره و چون خودش یک پرده جداگانه هست به خاطر این علماء می که اگر خواستی از شخصی چیزی بخوایی طلب کنی شب از او طلب نکن چون که شب خودش حیارو بر داشته چشمه ها رو پوشیده راحت میتون نه من ندارم رو تاریکی نه تو میبینی نه او می اما چونک حیا در چشم انسانه چشمهاشو خوب نمیبینی راحت میتونه انکار بکنه اما اگر روز از کسی چیزی بخواهی که به من چیزی بده تو چشمهاش نگاه کنی خیلی کم میتونه انکار کنه علما میفرمایند که اگر چیزی خواستی از انسانی شب نخواهید روز از او بخواهید چون چشمها دیگه نمیگذارند که زیاد انکار بکنه. اما اگر خاصی از کسی اذرخایی کنی شب اذرخایی کنید. چون که روز علیا شب تاریکه تو اون نمیبینی، رو خوب نمیبیند. راحت هر چم التماس بکنی التماس کردن تره چون میشه وقتی کسی هم بخواد سخنرانی کنه میترسه که مردم علیا چه حال میشه چشمهاش می میبنده تا اونها رو نبیند چی میگم؟ حس وقتی میخه خواهی کنی شب عذرخایی کنی چون به هر چم التماس کنی به پایش بیفتی اینجا حیا مانعی نمیشه راحت میتونید که کار خودتون انجام بدید اینها هم شب خاطر همین اومدان که تاریک اگر ما هرچی همینجا واویلا بکونیم تسنو باشه دروغ باشه اما حضرت یعقوب تاریک تشخیص نمیده می راحت میتونید گریه کنید راحت میتونید تسنگو کنیم و اون مطلب را در قلب بیاندازیم. به خاطرین یه حکمتی علماء بیان کردیان که شب آمدن. حالا چند روز بعد اومدن؟ طبق بعضی از روایه سی روز بعد اومدن. حالا دو رفته بودن گفتم ما میری تفریح میکنی پیکنیک میری. عوضی هم گفتند که نه همون روز شب همون روز آمدن. و اگر سه روز بعد آمده باشن نزدیک چه ها نشستن. همونجا نشستن کنار چه نگه داشتن تا نگ مطمئن میشن کسی اینجا نا آمده به هر حال الله فرمود میفرمایند که یبکون گریه کنان آمدن این گریه هم به خاطرین بود که خواست اون تراهم خود را نشان بدن یعنی ما کاری نکردیم ما هم ناراحتیم از اینکه که یوسف علیه صلات و سلام از دست ما رفته اللہ اظهار ناراحتی میکردن گریه میکردن این حرف خوبه در دل حضرت یعقوب افتید تنها برادر به درجه اگر پسر برادر ما هست پس ما در غم شریکی بخاطر این گریهارو هم آوردن اون جروح گذاشتن عامر شعبی یکی از کبار تابعین نزدیک بزرگترین تابعین هست حافظ حدیث انسان خیلی عجیبی هست میفرمایند که مشکلات یوسف همه در لباسش بودن همین لباسی که دو تنش بود کل داستانش در همین لباس بود وقتی داخل چا انداختن لباس رو بیرون کردن پرخون کردن آوردن پیش پدر وقتی که پیش زلیخان رفت بعض همون لباس پاره شد و گفت که این قد قمیسو من قبل اگر پیراهن از جلو پاره شده یوسف مقصره وقتی که خاصا دوباره پیش پدر برمی دوباره هم پیراهان رو فرستادن قبودن که رو بگیرید ببرید روی صورت پدرم به مالی تابینا بیشه کل داستان در لباس حضرت یوسف علیه صلات و خلاص بیشد این لباس را خداوند متعال در قرآن هم خیلی به اناویر مختلف تعبیر کرده جای لباس تغویر و لباس ذکر کرده اللہ رب جای خانم را لباس ذکر کرده جای همین لباس را لباس ذکر کرده پس اون چیزی وجود انسان خیلی تعلق داره و همیشه عیب انسان رو می پوشاند اون لباس هست ای لباس ثغوا باشه گناه رو می یا یا خود لباس خانم باشه که اون حیا انسان ها رو حفاظت میکنه یا اون لباس ظاهری باشه که ایوب ظاهری و عورت انسان ها رو می پوشاند این لباس خود یک زینت بزرگی هست برای آدم ها به حال برادران لباس رو گرفتند اومده اما گریه کنان گریه میکردند پس این بعضی از علما می پیش قاضی شرح نشستی بودند که ای خانمی ی قاضی ای خانومی اومد شرح یه قاضی با در زمان صحابه قاضی بود از قضاعت معتبری زمان صحابه این قضاوت میکرد یه خانومی برای ادعای اومد گیگه میکرد ادعا کرد حق من ضایع شده مطالب حق میکرد و اما خوب گریه میکرد تا اون حقشو ثابت بکنه حاضرین کنار قاضی نشسته بودن به قاضی گفتند که مثل اینکه راست میگه نگاهو گریه میکنه اگر دروغ میگه گیریا نمی کنه قاضی فرمودند که اگر هر کسی گیریا بکنه راست بگه پس برادران یوسف هم گریه کردن آمدند راست گفتند این گریه علامت حقانیت نیست کسی گریه کرد حتما راست داره میگه نه برادران یوسف هم گیریا کردن پیغمبر زاده بودم اما دروغ میگفتند پس اگر کسی متهم آمد در محضر قاضی و که خودشو زد به زمین این علامتی نیست داره راست میگه خیلی از خود ویسلام مقصر اونجا هم دروغ میگه و گریه میکره تا خودشو از دل براهاند به هر حال در بعضی بسیل دست بعض روایت می آید وقتی برادران نزدی خون رسیدن گریه کردن گریه میکردند و میکردند که و و یوسف رفت و گریه کردند. حضرت یعقوب علیه الصلاۃ والسلام وقتی که شنید فوراً بیرون اومدن فرمودن چه شده؟ گوسفندها رو گور خورده؟ رو گوسفندها چه اومده؟ گفتن نه، گوسفندا چیزی نیستن. بعد پرسید که یوسف کو؟ گفتن که ها یوسف والا سوال مطرح شد، فورا گفتن که پدرجا اینا ذهبنا نستبی و ترکنا یوسف اندما تاینا، ما رفتیم اونجا مسابقه ای میدیم. یوسف را هم در جای امنی گذاشتین این متاعینا جای گوسالار گذاشته بود در جای امنی بود گفتش و همینجا بشین ما امیر اونورتر مسابقه میدیم و ما هم مشغول مسابقه بودیم حالا یوسف گور آمد و یوسف را برد فاکل حزیب اما انت بمؤمنین لنا اما تو هم هرگز باور نمی کنی خود دروغو دیگه خودش داخل کلامش میذاره چیزی رو فرموده حالا یوسف را اونجا گور برد و ما بمؤمن به لنا تو هم مرا قبول نمی تصدیق نمیکون کنید کلام مارا ولکن صادقین گرچه ما راست هم بگیم شما قبول نمی و جاو علا قمیسی بدمین کردیم فورا پیراهن بیرون کرده بابا ای هم نشانی این علامتش که پیراهنش دیگر پر از خونه گر او را خورده قال بل سوولت لکم انفسکم امرا نه این کارو های شما آماده کرده گرگ نه فصابرون و والله المستعان على ما تصفون اینجا تا اینجا کلام الهی فهمیدن صبر میکنم و و چیزی شما میگید از الله رب العالمین کمک طلب میکنم اینجا این گفتن که ما انت به مؤمن لنا تو تصدیق نمی‌کنی یعنی تو ما رو متهم می‌کنی در مورد یوسف چون خیلی یوسف را دوست داری هرچی ما قسم بخوریم هرچی گریه هم تصدیق ما مشکله چون شدت محبت خیلی زیاده و گمان میکنیم ما دروغ بگیم یعنی گمان میکنیم ما دروغ بی گی. یعنی تاخودشون یعنی گفتن که یعنی خودشو چون مطمئن مطمئن نمیدروغ میگه اینجوری تعبیر کردن که تو فکر میکنی ما دروغ میگه اما اگرچه ما راستگو هم باشی شما قبول نمیکنی کلام ما یعنی هرچی ما هم ثابت کنیم اون صداقت خود را نمیپذیرید اینها برای عذر خودشون عذر آوردن چرا ما که تعهد دادیم برای هستی اما مسابقه دادیم، اینجا دو معنا داره، یکی از نستویغ معنای همون هست که مسابقه دادن یعنی برای آمادگی جهاد تیراندازی می کردیم، خود را آماده بکنیم، یا این یعنی کارها را تقسیم کردیم، هر کسی کاری رفت و کسی دنبال گوسفندی رفت، کسی کار دیگری کرد حالا ما پراکنده بودیم، یوسف تنها بود و گور آمد و همون قبلا خودت مگه نگفتی من می ترستم گرگ می خود قبل وقتی ما رفتیم گفتی که من میترسید یوسف را گرگ بفره. حالا چیزی که میترسیدی اتفاق افتاد. همون گرگ هم اومد و یوسف را خورد. حالا وقتی که اینجوری بگفتن در کلام خودشون یعنی تو داری ما را متهم میکنی. اما اون حرف خودت بود قبل ما گفته بودی. به این صورت ما رفتیم. تا این تفسیر میکنن میفرمایند که یک گزفندی کشتن و رو پر از خون کردن بعضی میگن که رو کشتن اهوکشتن و پیرهانو پر از خون کردن آوردن و اما عجیب اینه اون اوزری که خاص علامت اوزری باشه الله رب العالی همونجا اونها رو منحرف کرد نتونستن که پیرهانو پاره میکنن فقط پیرهانو پر از خون کردن و گرفتند و آوردن الله رب العالی همینجا اون حیله اونها رو تا حدود یک انحراف و اخلاقش گذاشت تا نتونن کامل خود را تبرئه میکنند پیرانو گرفتند و آوردند تا حضرت یعقوب را اینجا دیگه فری بدهن فرمودند که بل سوالت لكم انفسكم امرا این کار کار دل شما این همون حسد شما اینجا وادار شده شو وادار کردی معنی مختلفی داره ما رحمیت است که همون حسد این مشکل را درست کرد. یا این است که نه این هیل های قلب شما هستند دارید این پیرانو اینجا برای من می و میگوزارید حدیثی را که ابن حاتم در تفسیر خودش تخریج کرده میگن که اینها وقتی که همون آهو رو گرفتند و کشتند و پیراهانو پر از خون کرده آوردند و حضرت یعقوب علیه سلات و سلام پیراهانو این طرف اون طرف میکرد پیراهان یوسف علیه سلات و بوی یوسف را میداد این طرف اون طرف میکن. و دید که بر این پیراهان گونه اثر پارگی نیست رو خود به جایی که گرب او را پاری کرده باشه یا حمله گور باشه ناخونه گور باشه نگامی که بالا پایین اثیر از او نبود فرمودن که این در رنده از شما خیلی مهربانتر بوده چقدر در رنده مهربانی بوده که یوسف را خورد اما لباسشو خراب نکرد آرام آرام او خورد و در بعد روایت میآیند که پیراهان و بلد می کرد صورتش بی گذاشت. و گریه می که یاقوب علیه السلام چونکه بوی یوسف رامیده پیرا رو صورت می گذاش گریه می که این گریه میکرد که با عشقهای حضرت یاقوب علیه السلام خونها خیست می شدن. و چهره وارق یاقوب علیه السلام پر از خون می شوده. و گریه می بعد فرمودن که دی پسراش گو که فرزندان امروز گور خیلی گرگ بود، اما این گور خیلی برد بود. گریه می کرد. سورت پر از خون بود. اما می فرموت گور خیلی برد بار بود. پسرم را خورد. پیراهنشو پاره نکرد. و داد بیکشید تا این که دا و کرد و بیهوش شد افتار. وقت بیهوش شد رو صورت حضرت یعقوب علیه سلات آب میپاشیدن، بیهوش نمی آمد. یهوزا نگاه می کرد تنفس را. تنفسی نبود. رگهای حیاتی را نگاه می کرد. هیچ اثر حیاتی در یعقوب علیه و السلام مشاهده نشده تکان نمی خورده. بعد یهوزه فرمودند که اونجا بلار رو یوسف آوردید و اینجا پدر رو کشتی با کارهایتان چون یهوزه مخالف این قتل بوده فرمود اونجا یوسف را ضایع کردید و اینجا پدر رو کشتید تا سحر پدر بیهوش بود تا سحر شد هنگام سحر هوا کمی خونکتر شد و بیهوش امرد زمانی بیهوش بیهو سر حضرت یعقوب علیه و سلام در دامن روبیل به سرش روبیل که فهمیده تر بود در دامن روبیل گذاشته بوده و باز هم گیجی میکرد بیهوش اما باز هم گیجی میکرد فرمود روبیل مگر من از تو تعهد نگرفتن نسبت به یوسف مگر من نگفتم یوسف و به تو میسپارم که موذی یوسف باشی روبیل گفت در جان شما که می آرام باش تا من توضیح بدم گیجی نکن توضیح میدم با حضرت عليه علیه صلات و اسر وقتی که آرام گره فرمودن که ها اینا ذهبنا نستبق و ترکنا یوسف عندما تائنا ما رفتیم برای مسابقه یوسف را گذاشت اونجا که گرگ آمد و یوسف را خود شما هم قبول نمی کنید هرچی ما هم بگیم تستیقش برای شما خیلی کار سختی هست اما به هر حال اینجا دیگه کار سختی اینجا خود مسابقه را آوردن نبی مکرم السلام صلی ایک روزی به حضرت آیشه مسابقه دادن، دا. مسابقه دو میدانی مسابقه داد و حضرت عایشه چون که حالا جوانتر بود مسابقه نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم را بردند. بعد دوباره هم یک مسابقه را برد، بعد دوباره مسابقه دوبار مسابقه میدیم. اون عایشه را بالاتر سیندش که بیاید نگرفت تو نبی مکرم اسلام مسابقه را برد. فر بودن عایشه ای هم انتخاب همون روز هست. این بازی یا با اهل بیت بسیل شویخی کردن این اشکالی نداره و جائز هست به هر حال حالا این برادران آمدن با علامتهای خون و پیش فدر آوردن لباسی را سالم که سالم سالم بود یعقوب علیه صلات و سلام این چیزو اینجا قبولش قبودش نکه فر فروودن که نه در جواب نوفته چه با دروغ بگی فورا خیلی خیلی با فاصلهت بیشتری گفت که این کار قلب شما هست ولی ث ولت لو کنفسکم امره این کار دل شما هست شماها این کارو درست کردی گر این کارو نکرده این کار آوردی تا این به این صورته منو ناراحت می‌کنی حالا اینجا حضرت یعقوب علیه و السلام چرا باور نکرد چون حضرت یعقوب علیه الصلا و السلام قبلا اون خواب تعبیر کرده بود و که اجتوی کربکه تو پروردگار انتخاب میکنه. مقام بزرگ به تمیده و فهمیده بود که یوسف علیه صلات و سلام به زودی وفات نمی در تعبیل قبلی آمده بود. آباد این حسد را هم می اینها حسود و ایکار و را میآورند. و سه علامت بعدی یک پیراهن سالم آمد اینجا. این کل این داستانها دروی را می یک تعبیر قبلی خواب تو پیغمبر بود تعبیل شو قطعا و دو فراہن سالمین بعضن دروغ را بیشتر تایید میکرد و دشمنی قبلی هم بیشتر بر خود دروغان ها میزد بخاطری نا یعقوب و السلام راحت این رو باور نکند پس علامات حکمت اینجا این است که اگر در خود قضاایا و مشکلات آیا بدون شاهد جور ثابت میشه نا بدون شاهد جور ثابت نمیشه قبلا در سوره بقره مفصل در مورد صحبت کردیم اما علامات علاماتی وجود داشته باشه اینها کمک میکنن انسانو به خود قضیه نزدیک میکنن اما برای اثبات جور باید یا شاهد باشه یا اعتراف باشه تا زمانی شاهد نبود و اعتراف نبود تنها یک علامت بودن این جرم را ثابت نمیکنند. کند قرطبی رحمه الله در داستان آمدن پیراهن یوسف علیه صلات و سلام یک روايته نقل کردم که یعقوب علیه صلوات و سلام وقتی گریه کرد باید فرمودن که همین پیراهن شو برای من نشان بدید شما میگی یوسف را گور خورده پیراهن شو بیاری اگر ما از اون پیراهن شو استفاده کنم با اگر یوسف را گور کرده کلش را گور کرده هیچ چیز یوسف نگذاش دستی پای و استخوان باقی نموند که اونو بیارید شما البته پیراهن شو نشان بیدی. تا اون پیراهن رو بو کنم آوردن پیراهن و این پیراهنی یوسفه پیراهانو گرفت، بو میکرد. بو یوسف را دوباره داد، طرف اون طرف می کرد، باید فرمود دید که الله این پیراهان سالمه، قسم خورد که، "والله الله لذی لا اله الا قسم به خدایی که هیچ معبودی غیر از اون نیست، این گور خیلی مهربان بوده، از شماها که مهربانتر تر بوده، اون گرفت و برد، خورد و پیراهان گذاشت، پار نکرد، اما اینجوری نیست، خیلی ناراحت شد و گرنی کرد، داد بیداد کرد، باید فرمودن که فرزندان من که شما حالا کجا یوسف برده اگه اینجوری هست ای کاش من همونجا ببرید کجا بوده داستان شما کجا رفتید من همونجا ببرید تا من نگاه بکنم یوسف کجای جا یوسفو خورده حداقل اگر, اگر مرده اونو کفن میکنه دفنش میکنه اگر زنده است یوسف بر برمیگردونم حالا من همونجا ببرید وقتی این که اونها حالا کار میکنی کجا یوسف هست آزاد یوسف کجا هستند کل اسخانه خورده نشودن حال وقتی که اینجوری گفت بعد جناحت با خودشون گفتن که حالت چیکار کنی چه دروغی درست کنیم حالا رفتن اینجا هر صورتی ما هم بیاین که اینجا پدر قبول نمی کنن. بعضی گفتن که نه میریم داخل چاه یوسف را بیرون میکنین او را میکشید اس به میکنین دور میاندازی تا می آزار پدر ببینه باورش بشه 700 دست داش میکرد اما یهوزها گفتند که اگر این کارو کردید و تازینده زنده هستم با من با من ترف میشید. اینو من نمیذارم که بری یوسف را بکوشید و انجام مخالفت که و اگر هم دختری کاری بگی من فورا با پدر صحبت میکنم و کل حقائق را تعریف میکنم. وقتی اینجوری گفت اونها باز هم موندن راهی نبود یا یوسف را میکشتن یا اینو بعد میکشتن و حالا مشکلات سنگینتر بودن. حداقل کار کنید؟ حالالا بریه گورگی رو بگیری بیا آورین پر از خون میکنن رففتند و وارد دنبال گرگی گشتند و اون گور رو گرفتن پر از خونش کردند و آوردن وقتی که آوردن و بند و اول پیش پیدا و این گورگی. یا کل بدش پر از خونه با یوسف درگیری بوده بدش پر از خونه این گرگ ما گرفتیم آوردین این یوسف را خورده. و حضرت یعقوب فرمان گرگ را ها کنید. گرگ را گفت ب نزدیک. گور نزدیک آمد نزدیک تر نزدیک تر علا طبق روایت خود اللهم قورتو بی علا صحتش شقدر زیاده والله آلا اما اللهم قورتو بی نداده خود در تفسیر خودش بیان کرده تا این که صورت حضرت یعقوب با گور چسبان بعد به گور گفت که راستو ببو حالا چه کار کردی گور اونجا نفس نفس بیزه چه کار کردی با یوسو وقتی راهاش کرد گور گفت نه حضرت تیارکوی و چرا این کار کردی من ناراحت کردی به بزرگ بر من گذاشتی بعد گفت که من رها رها کرد باید باید من این کارو نکردم مگه من میام نبی رو میخورم مگه نمی دونی الله رب العالمین گوشت را بر درندگان حرام کرده هیچ درندی انسان نبیر رو نبیر نبی رو نمیخوره این کارو نکردیم من نپوس اورا دست دادم نموج اورا کندیم نلباس اورا من دست دادم من کاری نکردم اما من اینجا یک مسافر را را من یک غریبه هست در من ملکت شما برادر من از مصر اومدم برادر من گم شده دنبال برادر گرگم میگردم اینجا اومدم اینها من غریبتند آوردن و دارن دروغ میگن در سرزمینی که اولاد انبیا دروغ بگن در سرزمین زندگی برای من حرام باشه من اینجا زندگی نمی کنم حالا بعد حضرت یاقوب علیه صلات و سلام گرگو باید فرمو به با بچوهاج گفت که شما این از این گورغ همزامن شما این گرد هم بر گرده اما شما برادر از بین ور حالا اینجا شعر برای خیلی از شما سوال باشه گور با صحبت میکنه داخل صحیحه بخاری حدیثی داری نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و سلم فرمودند در کتاب المناقب در کتاب مناقب جد در منقبای حضرت عمر بن خطاب و سدی حدیث آورده همین حالتو ذهن من اوماد اینجا این اومده اونجا که وقتی که نبی کریم فرمودن زمانی میآید در نزدیک قیامت گرگ بر حیوانا حمله میکنه و چوپان نمیگذاره بعد چوپا وقتی میزنه گرگ میگه چه کار می کنی؟ اون زمانی میرسه که چوپان گوسفنده خود من میشم وقت نبی که اینجور فرمودن صحابه کار تعجب کردن, کردن گرگ صحبت میکنه فرمود که انا عمر بی و او و عمر من به این ایمان دارم او و, ایمان دارم و هم ایمان یعنی اینا حیوانات در قرب قیامت صحبت میکنن، گوسفندا صحبت میکنن، حتی ران پای این آدم هم صحبت میکنه. حدیثی دیگر دارین صحیح است یک شطوری در مدین منوره خیلی سرکش بود. و افراد خواستند که او را بکشن تا شطور فرانک پیش نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و سلم سر زمین انداخت و تعظیم کرد رسول الله صلی الله و را با واسطه کرد صحبت کرد. پس این گرگ هم از صحبت بکنی جز معجزه حضرت یعقوب علیه صلات و سلام فرمودن که جایی که بر انبیا اولاد انبیاز دروغ بگم در چنین سرزمین زندگی برای من حرامه. من اینجا نمیمانه. از اینجا فرار کرد و رفت و شهر رها کرد. پس از از فرمودن که شما از این گرگ هم بدتر بودی. گرد دنبال برادرش میگردی از میس اینجا آمده. اما شما برادر را خشتی. باید فرمودن فصبر جمیل صبر میکنه صبر جمیل را من پیشه میکنم نبی مکرم سلام صلی الله علیه و سلم در مورد صبر جمیل میفرمایند که صبر جمیل به صبری گفته میشود لا شکوا فیه یعنی هیچ گونه شکایتی از الله رب العالمین نباشه صبر اینه میگن شکو نه چرا را اینجوری بعضی بیمار میشه گناه من چی بوده عین جوانی بیمار شدن تا پیر بشه بیماری با من هست فلان مشکل روی من اومده فرانسید. شکایت میکنم. یا بچهی که فوت میکنه از این همه آدم بچه من فوت کرد. چرا این جوان طفل خوت کرد؟ گناه بچه من چی بود؟ گناه من چی بود؟ اینها صبر نیستند اینها ناجعظد. صبر جمیل به صبری گفته میشه که انسان شکایت نکنه از پروردگار. او بر چیزی خداوند مطال می آورند بر آن راضی باشه. و خاطر این حضرت یعقوب عليه السلام فرموند فصبر جمیل. ادوار می‌فرماید که انما اشکو بسی و حزنی الله که من این حزن خود را و غم خود را پیش فرvardگار میبرم و پیش هیچ انسانی من شکویی هم نمیکنم. اگر از نبی مکرم سلام صلی الله علیه وسلم از قبرستان عبور برو کنی خانمی داشت بال قبری گیب میکرد. بچهش فوت کرده بود. نبی مکرر اسلام فرمودن اون شب هم بوده فرمودن که صبر کن و امید صبر داشته باش. بعدی خانون گفتن که درد روی قلب من اومده شما چه خبر داری؟ بچه من خود کرده نبی مکرر اسلام گذاشت رو رفته بعد گفتن اون کسی که به شما گوی نبی, نبی خدا بودی چرا اینجوری گفتی؟ فاره اما روی جلوی خونه نبی کریم صلی الله علیه و عذر خواهی که فرمودن که از سبر صبر هنگام اولین صدمه هست اون را صبر میکنه بعدها که خود خود انسان باید صبر بکنه عادی میشه روی اتفاق یعنی اینجا پس صبر رو هنگام اتفاق اول باید صبر کرده که ال اول خود را کللا بزنیم کل موها رو بکریم لباسفر پاره بکنیم و ها و شکایت ها رو بعد از هفته که ر رو حالا می من صبر میکنم نمیخواد صبر که خود ب خود صبر فصابرون جمیل مانای شمین بود که نکنم. اما آیا هنگام صبر اگر کسی بیمار شود یا مصیبتی آمد خود اظهار مصیبت در بی صبری داخل یا خود اظهار مصیبت و اظهار غم اظهار بیماری در بی صبری نیست اگر گفت کسی گفت من بیمارم یا فلان مصیبت را دارم این نمیدین بی صبری نبی مکرم سلام صلی الله علیه و سلم وقتی بیمار شد داخل صحیح بخاری حدیث داریم که در مرز الوفا فرمودند که واراسا وراسا وای سرام درد میکنه اینجا نبی مکرم اظهار درد کرد اظهار بیماری کرد پس در بی صبری کسی بیماری ظاهر میکنه و بیمار این نمیگه بی صبری بی صبری همان است اعتراض میکنه و حرفای نامناسب را اونجا میزنه پس به هر حال اینجا پس این است که صبر جمیل به صبری گفته میشود که انسان وقتی که مصیبتی آمد اعتقا داشته باشه که این مصیبت از جانه پروردگار آمده است. الله رب العالمین آورده. و الله رب العالمین مالک هست. و ما ملک الله رب العالمینیم. و مالک در ملک خودش به هر صورت بخواد انجا تصرف میکنه. ما جا اشکالی و اعتراضی نداریم. حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی انها وقتی که تهمت زدن مسئله ایف که پیش اومده در انگام تهمت، هم علل نبی مکرم اسلام فرمودند که عایشه اگر گناهی کردی این الممت به زمین پس الله توبه بکن هست <تصفيق> عایشه فرمودند که لئن حلفت لا تصدقونی اگر قسم بخورن تصدیق نمیکنید اگر من عذرخواهی بکشم عذر من, من نمیپذیرید فمثلی و مثلكم پس مثال من و مثال شما مانند یعقوب هست پدر یوسف مانند یعقوب است اونجا فرمودند که فصبر الجمیل و الله المستان علامات است. من چیزی بیشتر نمیگم. همون چیزی من میگم. من گناهی نکردم. پس من صبر میکنم به چیزی که الله روی من آمده است. با حضرت عائشه رضی الله ها همین چیز اونجا بکار بردم. مفسری میفرمایند که حضرت یعقوب علیه و السلام ساله سال در این غم محلق قبلنگ یاد نباشه گفتن خواب هر سالی اله هشتال سالبه تعبیر شد پیر شد غم،, غم غصه یعقوب علیه سلات وصل او را رها نمی کرد. چون یوسف هنو پیدا نکرده بود آبروها پایین افتادند افتادن آبروها اینجور برمی داشت و اونجا وقتی برمی داشت اونجا گفتن که یعقوب چه حالی دارید فرمودند که طول زمان و طول احزان، چقدر طولانی شد این غم و چقدر این غصه ها برمان فشار دارم می آورند واسی انجوری گو فورا اللہ رب العال فرمودن کہ فاو اللہ تعالی اللہ واہی کردان که یا یعقوب ای یعقوب شکایت منو میکنی خداوند متعال یعقوب از من داری شکایت میکنی این مصیبت را من آوردیم این غم را من فرستادم برای از من شکایت میکنی تو بعد یعقوب فرمودن که یا رب بار الله اشتوا کردن اخطأت و اشتوا کردم منو مخفرا بفرما گناه نبود اشتوا تو اینجا هم در گناہ نشود اما اینجا چه سوالی مطرح می‌کنی حضرت یعقوب علیه الصلاۃ و السلام برادران خود اونا آنها قبول نکرد فهمودن که بر سوالت لکو انفسکم امرا شما این دروغو درست کردی شما شما کار شما هست و کل داستان ساختگی شما گورگی در کار نیست اینجا و میدان سی هم زنده هست چون قبلا گفتی که تعبیر کرد یوسف زنده می‌مانه میدان سی یوسف زنده هست اما چرا باوجود اینکه میدانست یوسف زنده هست و میدانست اینها دروغ میگن چرا دنبال یوسف نگشت وقتی میدونه پسرم زنده هست باید دنبال پسرش میره باید او را پیدا میکرد اما حضرت یعقوب علیه صلی و وصل این کار اینجا نکرد در حالی اگر یعقوب اونجا هرکز میکرد کل کنان دنبال یعقوب میرفت چونکه یاقوب از یه خانوادی بسیار بزرگ بود خودش پیغمبر بود پدرش پیغمبر بود ابراهیم علیه السلام پدر بزرگش که پیغمبر و امام الانبیا بود و تمام او تایید میکردند اگر اقدامی کرد تمام اهل شهر دنبال یعقوب میرفتند با وجود این بزرگی این کرامت ها چرا یعقوب علیه السلام چه دنبالش نرفت بعد دنبالش میره الا بچه کسی گم بشه و رها بکنه هر جا رفت رفت اینجا یک سوال مهمی هست این سوال خود به خود این تاییدی باز این است یاگو اونجا گفت که من صبر میکشم داری دروغ میگی باز هم نرفت غمها زیاد بودن علتش این است که ای تندین علت داری اونجا یک علتی نش گویا ک شاید الله رب العالمین نای کرد حالا تو حق صفاحس نداری بشین تا که بزار امتحان یوسف علیه الصلا و السلام خیلی زیاد باشه در مشکل گرفتار میشید اللہ رب العالمین همیشه بزرگان را در مشکلات بزرگی گرفتار میکنه یک علت این بود علت دوم این بود که یاقوب علیه السلام می اگر من بنا هرکب بکنم این با پسرات خیلی قوی و من پیر مرد و جلوب پیر مرد و نمی که برم و قطعا این نداره و برای مردم هم بدتر میشه. یا حکمت بعد این بود که می ترسید از یوسف اگر من دنبال یوسف برم من که جاشو نمی دونم اما اونها جرا میدونن تا من پیدا بفه اینا هم دین یوسف رو اونجا میکشن و امکان قتل یوسف اینجا وجود دارد تا اینکه از اون مصیبت بزر یوسف را نجات بده همون دنبال گشتن او را رها کرد دنبال حضرت یوسف حضرت یوسف علیه صلات و السلام نرف اینجا یا این بود که الله رب العالمین اعلی گذاشتن که تو بش نجات و الله او را خودش داره حفاظت کند اما چون که نمیدی اینجا بر حضرت یعقوب علیه صلات و السلام خیلی سنگینی بود حال یوسف داخل چاه و برادران پیش پدره. و جاءت سیارۃ فارسلوا وارد فادلوه کاروانیان آمدند وقتی که آمدن فادلا دلوه دلو را داخل چاه گذاشتو قال یا بشر هذا غلام خوش خبر باشید این یک پسر جوانی است و اثر رو بذا او رو مخفی کردند گفتن کالا هست و الله علیم ما یعملون الله بهتر بدون کار کنها انجامی دهم ده و شروعه به ثبت اربا دراه مختصری فروختن دراه معدوده و کامن فیه من الزاهدین و برغبت مودن حالا در مورد آیه بعدی شکل فردا میرسیم. حالا وقتی که اومدن یک کاروانیان اومدن این کاروانیان حالا از مدین یا از سرزمین حجاز اومدن مدین در قسمت حجاز قرار دارن حالا وقتی که از حجاز اومدن اینها از قوم حضرت اسماعیل بودن. اسماعیل و اسحاق برادر بودن. اونها پسران حضرت اسماعیل اینها پسران حضرت اسحاق. پس فس اینها پسر امو هم دیگر بودن. کاروانیان آمدن وقتی که آمدن حالا نزدیک شهر مصر راه را گم کردم. اینجا الله رب العالی اونها رو را برای اونها دیگه مخفی کردن. راه را گم کردن. راه گم شد حالا سرگردان شدن. همین سرگارا این طریق اون طریق می ره تا اینکه رسیده به همون جا چون این چا در منطقه غیرآبادی بود جایی بود که حالا توم ایرادات قبلا گفتیم روی مسیر بوده. اما بعضی بیگان نه. در منطقه غیرآبادی بود. اینا راه گم کردند تا اینکه رسیده اونجا. وقتی که رسیده اونجا چایی که یوسف و السلام در پی چای بوده، اون داخل همون به اون چای رسیدن. و بعضی بیگان این چا آب داشت آب کمیده، اما آب شور بود. مردم استفاده نمی کرده. اما وجود یوسف چه شیرین کرد آب چه شیرین شد وقتی که کسی که دنبال چاه فرستادن برو آبی آوری حال شخصی رو برن مالک فرستادن مالک را برای چه آوردن؟ و وقتی انجارسی مالک ابن زعر بود و تناب و داخل چاه انداب اکتاب و دلو که آبی کشی یوسف علیه صلات و سلام فکر می برادران برگشتن شد اونها به رحم اومده تا رو بیرون کنه. فوالا خودش رو با همون تناب گرفت. یا امکان داره که اصلا فکر می کسی دیگر هست و و خود را با تناب گرفت. وقتی به تناب گرفت بالا اومد. وقتی که بالا اومد، چون در یک گوشه چه نشستی بودن. نزدیک چهقی رسیز مالک وقتی او رو اون خسن زیبایی یوسف او را ناساخته بی اختیار بی فریاد را گرد. یا بوش رخاز اغلان، ای مرد، این چه خبری اینجا؟ حسن زیبای یوسف او را به فریاد آورد که این جوان بسیار زیبا هست. میگم وقتی که یوسف لبه چاکی رسید مثل ماه چارده برق میزد. حالا جلوتر انشاءاللہ حسن یوسف را میگیم، اگر وقت تمام نشد، رمضان تمام نشد، ما اونجا رسیدیم. اونجا میگیم، و انشاءاللہ اگر هم داستاد یوسف تمام شد، با شمائل نبی میگم که زیبایی نبی کریم را با یوسف مقایسه میکنن با اون خیلی شیرین تر آخرش هست تا آخر بشینید و این رو بگیرید چون آخرش خیلی شیرین تر می زمان نبی کریم را مقایسه کنین که چقدر حسن زیبایی نبی ما داشت به هر حال این ماه 14 که رسید لبچاه خیلی برق میزد یوسف علیه الصلا واسه این هم بدون اختیار فریاز زد داخل صحیح مسلم حدیثی داریم که نبی مکرم اسلام صلی اللہ علیہ وسلم می فرماین وقتی که من به معراج برده شدم یوسف را دیدم وقتی یوسف را دیدم دیدم که یوسف نصف زیبای کل جهانیان بود شد کل جهانیان نصف زیبای کل جهان مال یوسف بود این قدر یوسف زیبا حالا نصف دیگه مال کل خیلی زیبا خیلی زیبا کار یکی از روات هست و اکتابه های سابقین خیلی زیاد مطالب میکرد. کتاب احبار میگه که یوسف چهره بسیار درخشانی داشت موهای شکسته. موها صاف سابسابنه شکسته. موهای نبی کریمه شکسته بودن. و چشمه بزرگ بوده. شکم هم راس بوده. آزام معتدل بودن. بازوها و دستها پرگوشت و خیلی زیوا و قشنگ بودن. و وقتی که توسط میکرد نور از زبانها و لبهایش میقدرهخشید. وقتی صحبت میکرد گویا که خورشید در از دهن بیرون نور خورشید دهنش بیرون میاد. اگر در شب صحبت کرد گویا که نور خورشید داره بیرون میاد. یک روایت رو خیلی خوب من خوندم. میان یوسف علیه السلام و اینقدر زیبا بود در کوچه ها که میگشت خودشو داخل دیوارها میدید نورش بر دیوارها منعکس می شده بیش از حد زیباتر ان شاء الله ما مرزیبای میگیم زمانی که خانم های مصری ده سهارو قطع کردن به حال بسیار زیبا بود بعضی روایت میاد که شیخ حضرت آدم واسه الله رب العالمین آدم را خلق کردن آدم را خیلی زیبا خلق کرد اون زیبای آدم را داد به یوسف علیه الصلا و بعضی میگن زیبای یوسف علیه الصلا السلام از مادر بزرگش ساره اُرو به اس ورده بود ساره همسر حضرت ابراهیم علیه الصلا و السلام خیلی زیبا بود و یک ششم زیبای دنیا مال ساره بوده میگن این زیبایی از ساره است برده بود و داخل صحیح بخاری حدیثی داریم که حضرت ساره اینقدر زیبا بود پادشاه جباری وقت زیبایی ساره دید ساره اونجا گرفت و برد و حضرت یوسف فرمود حضرت ابراهیم که نگاه کن امکان هست که تو رو بگیرن و اگر گفت این که هست با تو بگو با این برادر برادر من از نگو همسرم ها چون بگی همسر هست منو میکشن و تو رو میبرن که برادر ایمانی چون من تو برادری من هم سلمان. تو هم مسلمان در برادر برادرخوار ایمانی هستیم. وقتی که اونجا بود پادشاه دست دراست کرد فساد رو دست بزنه برای فساد دست خوش شد چون این هم بیت نبوی بود اهل بیت حضرت ابراهیم بود فنا خوش شد پادشاه گوید که دعا کنم که خوبیشم من با تو کار ندارم. دعا خوب شو. دوار کا خوب شود. دوبار دست در آسک دوبار خوش شود. که حالا دعا کو خوبی حالا کار ندارم. دوبار دعا کرد. مرحله سوم دوبار دست در آسک دوبار خوش شود. بعد پادشاه کہ حالا دعا کنم من حالا فهمی تو انسان نیستی دست من به تو نمیرسه. بعد رهاش کرد و حالا برو و حاضر داد. این بی بی مادر معادر اسماعیل علیه السلام همون کنیزی بود که همون پادشاه به ساره هدیه کا گو حالا این کنیز مال تو تو مالت... بعضی میگن حضرت حاجر دختر همین پادشاه بود و فهمید که این خانون جن فکر میکن جن اونها جن پرست بودن گوی دو، علی خدای من هست پس یک دختر من بره پیش همینها بیشینه بهتره بعضی میگن که فهمید که این حضرت ابراهیم و از ابراهیم جز بستگانش بود از همون قوام پادشاه بوده و حاجر و داد که حدی اغلب اینجا کسی از بستگار مندیز حاجر بره پیش تا نسل من خراب نشه به هر حال داستان مختلفی که آوردین حسن یوسف علیه السلام این قادر زیادو بعضی میگن که حسن را از خود حضرت سارب عصر برده بوده حالا اینجا رسید این هم داغ زده، ها زاف غلام. این غلامی هستو و اثر روحو بزاه آفارا مخفی کرده اگر میگفته اینو من از این چاه پیدا کردم حالا کاروانیان چون این یک نفر پیدا کرده بود بن اسماعیل و بقیه کاروانیان مدعی میشدن ما هم داریم. ما هم داریم با هم بود در سفر. هر جابری این غلام مال همه ما میشه انا مخفی کردن واضیه نکردن و گفتن یه کالای مال خود ما هستو ما اینو قبلا آوردیم. و بعد از روایت می آید که حس عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه فرماند که برادران مخفی کردم برادر اونجا زور هم نگهبانی میداده حالا کی میاد کی میره اینجا تو وقتی که اینها آمدن و بیرون کردن فوراً گفتم که نه این مال ما هست این غلام ما فرار کرده این غلام فرار کرده و فوراً یهوذا با زبان عبریانی به یوسف گفت میاکم امین غلام ما هست یا جرابین بود یا خوزاد تو دروايت آمده. بهش گفت که نداک من میگم غلام ما هست و تو تصدیق بکن به غلام ما هست. غلامینها بودن. شاید به این صورت تو حالا جان سالم در ببری تو میبر از جا میری دور حالا زنده میمانی. اما اگر بگی که نه من غلام نیستم، اینها تو را میگیره بعد با. یوسف فردی باش میگم. بازبان ایرانی، اونها که عرب بودن، دوباره بازبان عربی، اونها به اونها گفت که نه ما هست و پرسید مالک. که آیت تو غلام اینها هستی؟ گفت بله من غلام اینها بعد فرمود که مالک این چهره چهره غلام این نیست این چهره غلامی تونه باشه نه این غلام نیست بعد فرمودن که نه بابات غلام ما هست چون که پیش ما بوده در خانواده ما روش کرده رنگ ما رو گرفته اخلاق ما رو گرفته زبان ما رو یاد گرفته همه چیز ما رو عرص برده بعد فرسیک تو غلام میگفت بله بله من اخلاق اونها رو اینها من بزرگ کردن حالا من از مونا هستم تو خانواده همینها بودن دروغ نبود همینها راست بودن و به این صورتی اونا بفتت غلام ای هستن اینها گرفتند و اونجا بردن و بعد از این که گرفتند و بردن و اینو حالا بعض میگه همینها اینجا فروختن پولی گرفتند و طبقه بعضی از روایت وارد در مست فروخته شد و فوتیفار گرفت گرفتونی خرید و داخل خونه زلی خابر اشالله کرده و قصر مصر می رسیم عليه علیہ السلام چه مشاقع داری جا تحمل می